ی باسه عروسی ما؟ بچرخیم بره تلیمه جون تو چی دختی باسه عروسیمون چیزی شده میشه ماه کنم نخواستم دی دیدن برم بری کجا بری مگه تازه برنگشی؟ عروسی ما نمیای مگه میشه توکل حظ دار نبودنت نبودنتو و مرتضا کجا بری جایی که توکل نباشه نه. بزنین نه همچی محکم و مجلس جلو آگ کردیم بوسان خاله‌خانم بگو تا خیالشون راحت شه که داداش توی دادگاه علیه داداش قسم نمیخوره شهادت نمیده پای نمی رویا میشنوَم داداش بر علیه دادش قسم نمیخوره قسم دروغ به قرآن بخورم قسم چرا؟ دروغ چرا؟ سر به نیست برو برو قسم پر شاهد پر یه پری نشونتون بدم پایی رفتی نرفتی آها، آهان قمتی که لیلان پر قامان نیست قامان نیست قامم هست شب این همه سال لیلا پاد حالا قامت نیست به پره بره نه سر به نیست میری کی جز خودم خبردار نمیشه که کجایی میگه از رو من رشن. شاهد پر سر به نیست دونگ نداشته پر لیلا بری بیشتر بذار دفعه برو. آقا نگاه میگم برو آقا. نباشه آقا یه نمیاد اومدی من؟ آقا نگاه کن ما بلدیم دارم یاد یادت یاد نمیگیرم. سعی کن اگه. یادت نیست. نمیگیرم. هم. من چیزی نیستم من چیزی یکی نیستم. خدا باز دارم زمان دارم از دارم. تو بگو نه چی آره سو دری. یا؟ آقا چه خبر آقا؟ اوه! چرا ایسوری بکنی؟ بایستادم دیگه باید سربه نیست بری تو مجبور نشی قصم دو بوک بخوری چونی اونجاست خب نمیخورنش که اونقدر اینو خوردم تو زمین دشمن قریمت نمیذارم. چرا از بیخوابی چرت و پرت میگه بفهمت سربه نیست بری آخه داداشت قربانی چی داری میکنی؟ بابام حقیقت میخوام رهاش کنم از جهنم این دنیا بفهم ایبش چیه واسه کتابای بچه محاصله خوبه، بچه محاصل هستش واسه تو چیه باسه من م? فرار نکردم در نرفتم کی در رفتن کارم بوده که الان باشه همیشه همیشه حالا یه بارم روش. من فرار کردم همیشه یه بار یه بارش گفتی درست بود کلمو میکنم تو همین دیوار ها چی کی فرار کردم هاتفه چه حکایتیه که عمری بابامون خواست و خاصی مامانمون خواست که فرار کردن یادم بده الا چاووش که گفت وایسا همیشه ما کی فرار کردم هاتفه من وایستادم کوچک خوردم ولی وایسادم ضرر کردم ولی وایستادم تو پیس، مدرسه، دانشگاه، فوتبال، زمین خوردم ولی وایستادم چاباش بهم گفته وایستا الان هم وایی میستم وایستی باید قسم دروت بخوری اینو به بابامون میگفت و اینم میخوابون تو بو شد یا نه من راست قسم میخورم خلاص آبریه داداشتو میبری فرار کنم آبری خودم میره دیشه با چاقوز عیزم الانم دنبالمون کرده من همیشه سربزی بودم ولی سرم پیش خودم بالا بود خودم این حرف رو یه دادم پس نمودا دیگه خیلی خوب باشه بایستا فرار نکن برو ماشین در تجاله خونه اونو بردا بیار خونه بشین تا نوبت دادگاد برسه برو تو دادگاد بگو دادشم مال مردم خوره لیلا بشینه کنار تو اقه لیلا لیلا نکن کار نکرده رو نبند بهم نه به من نه به لیلا لیلا خانوم جواهر مظلومه بعد این همه سال بهش گفتم نه تا این حرفا در نیاد برای لیلا در نیاد حالا ای باز بگی لیلا لیلا آره لیلا. میگم لیلا میگم لیلا برای اینکه زنه من زنم میفهمم که تو آه. بودن. مرد بودن حس و زن بودن نیست خبه من میگی فرار کنم ولی لیلا تو اون خونه وایستاده لیلا تو زنیتش زن تره یا من که مردم عربا خاکم آدرمون که لیلا زن تره آدم تره گنده ای تو مغزم با هنگ به لیلا خواه تو کوچیک نکن باشه خودم کچیک نمی کنم ببین چی دارم بهت میگم داداش شهادت بدی نذاری بری فقط چافوشو از دست ندادی آتفرم از دست دادی حنیفم از دست دادی فکر یه خونه دیگه باش اصلا خونه مهم نیست فکر یه خونواده دیگه باش الان یه چیزی از خدا بخوا خوستم میشه به هم بگی چی خواستی خوستم دوقتو نبینم اون چ ک؟ خب به چون میخریم دیگه دوره ساکت بودن گذشته. دوره نشستن گذشته. حیای علکی گذشته. ریزن 20 هم جله داد و حسن جمعشون کرده. به چا باشم خیر باشه ماما اینجا چی کار میکنی؟ خدایی نکرده یه باد به پهلوت بخوره نیدین چی میشه عریضه دادی؟ مخالفین؟ همه گانیش کردی؟ نه فقط به طرف حسابات حساب بید دستشون خیلی خوبه دوست نداری به پیر زن را سلام کنی؟ سلام سلام پسر زحمت کشم شفته اسمت چی؟ مرتضو. آخ ببینم با سدله داده خدا مرا. هر چی خاک مرتضای اونه، عمر تو باش سلامت باشی. زن داری؟ بله بچه چی؟ بله دوت. سه و میکی میاد؟ بس سمت دیگهش نه نگو، خدا قلبش میگیره. اگه پسر پسرم انشالله اسمش وزار خافس. اگرم خانم دختر بود پسر فاطمه حسنا آن چر بشید ببین ببین ماما جهان من همسر کریم بستانم شریک اینجا تا وقتی که جواب دادگاه بیا خودم میام پای دخت ماما شما نمیتونی با این وضعیت چرا ماده من ما خوبم زنده، نفس میکشم عقل دارم، تدبیر دارم مردمون به هم ریختن سلامون که دیگه نبید به هم بریزن که باما جان. چاوش نمیاد کریم بستان نمیاد حنیف نمیاد ستار نمیاد فقط انفر حالا پشکرو دوتا چهی بیارم باقا مرتزا با خوریم بارم اما بشین آقا جان. باید برم جلوی در چاوشخان خان گفته همیشه باید جلوی در وجه باشم توی این سرما بشی هره مشتری اومد میری <تصفح> مغازه میوه فروشی نیست که مشوری بیاد خب، بخی من بلد نیستم بگه چیکار کنم یادم میدی؟ چشم <تصفح> خیلی Töpä شما دید بفرماید بفرماید بفرم. حجره آره میدونم نگران چی هستی؟ بابا بستان حال و روزش حال و روزش خوبه به از من نباشه بدر نیست میرم اونجا که خوندیزی نشه راستم بگو گفت میرم که کسی شخصونه نکشه که برسه به خوندیزی گوش کن چی میگه؟ این پلوهاش رو با اون پوسه شطور ببند که سرما نخورد اون تو توساچ خودشه درها قشنگ ببند متوجه شدی بابا؟ آه زنی زدن خدا حافظ سویچه ماشین داشم دواش تو نمیان من برایت دنبال سویچ نمیگردم میایی بری برشتری یا دره ببندم من به خودم فکر نمی کنم فقط بیشتر به فکر لیلا همیشه به فکر لیلا میمیخوام پشتش حرف دارد که اون بینه دوتا براده لیلا دیگه تمامه. دیگه لوات و زبونت مجووز بردن اسمشو نداره. یاده بری سویش تو پیده کنی یاده ببنم یاده کش تو جیبمه Oi, گفتم به پایی هم پیرشید نوکره تم زنده داشت خونده داشت گفته که باید عقد رو کنی من گفتم چش خونواده این من از بوشقاب کسی دیگه غذا نمیخوره نرگز خواهر من تمومه برس به زن عبدیت. چاوش مشکل خودتی خنده داشت من گفته میدون نه یا تو ماجرا اقل نشده شد حالا من چوش رو از دست میدم از دست مینی حالا باید انتخاب کنی بین تو اون نرگز اسم هیچ زنی رو جلوی من یه آقای شوهر. Beynimem Chavuus. راگم کردی بیا تو دلم هر تنگ شده بود عین من برات نهار میذارم یه نهار دو نفره فردا شکایتی کریم بوستان از چاوشو میذره اجرا کی؟ وکیلش کریم <تصفح> بوستانا وکیل شده کی هست من هموزم نهار دو نفرمون سرجاشه؟ هم دروق نمیخورم میدام پس این رشوه است؟ ناره رشوه است. رشوه قبول نمی کنم رشوه تو نیست خودم به خودت هم دوست داشتیم یکی از این ماشین داشتیم داشتم از روزی که یکیم شدیم هرچی خوستی ورد فرمام کردم این آخرین چیزی که دوست داشتی ورد نگرفته بودم در اون گرفتم با رو کن سربه نیست برم شما یادم دادی فرار نکنم پس فرار نمی کنم فرار نکردم تو اون داره تو اونش چیه؟ بشیم بشیم برو به او که مثل همیشه داشتیم نه دیگه تو اونش بیگه داشت نیستم نمیخوام تعدیدت کنم و به ترسونمت قامت کنم نه نه جونه مهتاب نه جونه بچه نداشتم ازت خواستم رازداری کنیم اوکی ندادی همه چی به هم ریخت همه چی به خاطر تو با هم رخم. خاطر تو من دیگه درم صاف شدنی نیست برای خونی هم که ازت ریختن تلافیه میکنم، جلو روشمون بایمیستن ولی برای دیگه از داشی خبری نیست درسته وقتی مادرمون افته تو جا از خودا خواستم زودتر ببردش بیدونی چرا چون دست و پا زدن علکی بدن میاد بدن میامد بودا هم روبرا نشه بدن آف شو ببینم دیارش رفته بدون همت میرف میموند دست و پا زدن علکی بود Tuhal kiveki. Tastopo zadan alikki. budam. budam. چون من قسم دروغ نمیخورم چون من به خاطر تو قسم دروغ میخوردم بیا، حالا بیشی پوشش بیاریم ماشین میاد یا Pissi. Salam säröji, idä muhadi, rubi, vaham,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 لما هو البالي من که اقتدا نکردی. نه. من با این غمه به هم ریخته چیکار کنم، حلیمه؟ شما بزرگتری بهتر می‌دونی. تو هم که هی این سن مسأله بزند رو سرم. خونه مازم میگه کنیم سوال کنم علیکی سلام اینجا چکار میکنیم؟ یه خونه ما یه اتاق خالیه حلی مره بردار بیار اونجا خونه خودم هست این حالی من رو قاطی دعوای خود با آتفه نکن طور خدا قاطی شده میخوای خودش بپرس بول کنار ببینم داشتی میرفتیم خونی الفت گفت رفتی اونجا تحفیلش نگیر گفتم میگیرم کلیدو داد به هم گفت برگرد خونه خب من خودم برای خودم تصمیم میگیرم اونجا خونه منه خونه شوهر سابقم روزا که با علفت اینجا شبا میرم پیشش یعنی چی؟ روزا با علفت اینجا شبا میرم پیشش علفت میخواد باسته فجره بی خود کرده چقدر این رفت آشناس بی خود کرده بی خود میکنی زنجه شرخوندنت خندهات کتک زدنات پای چشم کبود کردنت داد زدنات تو این بیابی میگی چرا کوزه شکسته همه همدردیامون قبول داغ مرتزامون نبول پیر شدیم جفتمون تنبیه شدیم جفتمون اما یه بار یه بار برای همیشه حرف دارم با من دنبال مرافع نیستم اما من هستم علیمه احترام زن بودن تو نگهدار توکل احترام مرد بودن تو نگهدار احترام داقدار بودن تو نگهدار احترام داغدار بودن اما نگهدار <تصفيق> اوی توکل کی گفته من محکومم چون زنم کی گفته عهد تیر کمون شاه عهد تیر کمون باشه غلط میکنه من زنم حرف میزنم مرد باش گوش کن بگو که فهمیدین نصف سن خواهرت بودم زنت شدم لباس عروسی تنش کرد بعد همون ده سالش بود بری کردم و رفتم با چشم کبوت، تن کبوت، دل شکسته چرا؟ چون تو مردی؟ توکل بابا یادته؟ اون مرد بود جز گل، جز عشق خانومم، نازنینم چی گفت بزنش؟ که تو نگفتی به من؟ داری جنازه کشون همشه قبل میکنه؟ جنازه که بچمو بچم تو بردش که شد جنازه چوبل کردی که شد جنازه دهن بستن بسه. حیاب بسه. تو این شهر غریبم به جهنم یه صرف ندارم زیرش بخوابم. مهم نیست به جهنم ولی اومدم حرف بزنم و تو هم باید گوش کنی گوش میکنی بزه من نمیدونم به کیا به کارم به تو به مرتضی به عالم و آدم بده کارم من مشغول زمه خودمم حرف نه همینا رو میخوای بگی بگو دیگه تباکل دا دوست داشتم یا قصی نداشتم الان من دست دارم. من لیاقتش رو ندارم. میدونم. هوا اومدن این قسم این دو تا دددا شما و از هم دور میکنه ستار میره دست سارا و ستاره رو میگیرم و میرم اگه قسم از رو آراز بردارین میرم بر علیه دادشم باشی دشمنت میشم قول دادم به توقع قسممم از دشمن داشتم با پیتلپورتم شده دقمال افقا میرم اما آراز رو خاتش نکنم با هم توی دعوه خاتش نکنم رای میکنی جای امری میسوشی به زنت بیمرفه یه تونل کردم که راه برگشتش ریخته این برای تونه فقط تا اون زنم میشه تمها میمانم میدانم میآیم با تو آرامم بیچاره تنهای تنها ایمان آشکار زخمی تر آرام چون آتش در زیر خاک دوبین آه دل تنگ دیدم بغزن شب تورا من هر چه دارم نشود او شفتم او بر ورا او شفتم او شفتم چون چشم کسوت